ای چاپلوسان یهود و نسارا. آیا شما خود را جورنالست معرفی کرده اید؟ مگر مردم نمی دانند که شما نوکران غرب استید؟ آیا شما شب و روز به نفع باداران غربی تان کار نمی کنید؟ آیا شما مردم را به نسرانیت دعوت نداده اید؟ آیا اسلام امریکایی را شما در جهان مروج نساختید؟ بله، بله، بله، بله، بله اما مردم میدانند که شما دایان غرب هستید اگر دختران مردم فرار کردند اگر پسران مردم معتاد شدند اگر اختلاط زن و مرد به وجود آمد اگر مردم بی شدند اگر مردم مخالفت خلافت اسلامی را می کنند و اگر مردم به مختلف فتنه ها واقع شدند بدانید که سبب همه این فتنه ها شما هستید اول شما را دعوت می دهم و اگر ایران شیران خلافت اسلامی دنبال شما هستند شما را غافلگیر گیر میکنند و شما را مردم تماشا خواهد کرد باز شیران خلافت اسلامی توسط شمشیرهای بران خود سرانتان راستانتان را جدا میکنند ونودي بهدي لحظات خبری سوى خلافه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 برادران گرامی توجه نمایید به خبرهای امشب بسم الله الرحمن الرحیم مجاهدین خلافت اسلامی چند روز قبل بالای آنتن نشراتی یکی از رادیوهای مبتزل که اراکوزیان نام داشت در ولسوالی غنیخیل حمله نمودند که در نتیجه تمام وسایل آنتن مذکور خوراک آتش گردید و نشرات شیطانی این رادیو در ولسوالیهای شینوار قطع شد و در یک خبر دیگر چند پیش در اوقات مختلف مجاهدین ولایت خراسان دو تیاره بی پیلوت امریکایی را در ولسوالی های کوت و اچین سقوط دادند. یک خبر دیگر می رساند که مسئولین اداره حزب شبه گذاشته کشت ککنار را که در نزدیکی پسته یربکی ها قرار داشت در منطقه شدل ولسوالی اچین به طور مکمل از بین بردند و با این کار کشت ککنار از تمام ساحه پاکسازی شد. و همچنان یک خبر می که در منطقه مذکور آن قبوری که به شکل پختکاری مخالف شریعت بود از سوی مجاهدین خلافت اسلامی به طریق سنت برابر کرده شد. برادران گرامی این بود اخبار ولایت خراسان و حال توجه نماید به اخبار ولایت دیگر خلافت اسلامی. لحظات خبری سوی خلافت, سوی خلافت.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 مجاهدین دولت اسلامی در مسافه سی کیلومتری جبل دوکو در شرق دمشق یک تیاره جیت جنگی نیروهای بشار را سقوط دادند و پیلوتش نیست زنده اثیر شد که نامش عظام امید باشندهی ولایت حمات است یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی نیروهای راقی را در شمال شرقی شهر فلوجه هدف حمله قرار داد این نیروها زمان آماج قرار گرفتند که خواهان پیشروی به سوی ساحلی الکرمه در منطقه روفه بودند. در این عملیات بیش از پانزده ساکر عراقی کشته و با این حمله از پشروی دشمن نیز جلوگیری گردید مجاهدین دولت اسلامی در کمپ فلسطین در جنوبی دمشق در سرک حیفا و سرک المداریس بعضی مناطق دیگر را هم به مدد الله تعالی فتح کردند این بود خبرهای بلایات مختلف خلافت اسلامی حال توجه را به یک اعلامه دیوان حسبه جلب می‌دارم. برای تمام برادران مسلمان، مجاهدین، مهاجرین و انصار ولایت خراسان اطلاع داده می شود که ساحه خلافت اسلامی تنها به خاطر تطبیق دین الله تعالی است. در اینجا تنها اوامر و نواهی الله تعالی می شود و در این باب از تمام منکرات جلوگیری خواهد شد. و در اصول خلافت اسلامی صلاحیت جلوگیری از منکرات برای دیوان حزبه سپرده شده است. و تمام باشندگان ولایت خراسان در تمام ساحات اجتماعی، حربی و شخصی از هر گونه منکرات باید خودداری کنند و اگر در هر قسمت کسی هر گونه منکر را مشاهده می کند فوراً باید مسئول حزبه را در جریان بگذارد تا که از آن جلوگیری به عمل آید در بخش زندگی منکرات مختلف وجود دارد ما به طور نمونه بعضی از منکرات را ذکر می نماییم الف منکرات در بخش عقیده دشنام دادن به الله و رسولش و توهین کردن به مقدسات دین صحر جادو، بندها، منتر، گجک و آویزان کردن تعویز قسم به غیر الله انجام دادن رواجها و بدعات به منکرات در نماز به تاخیر انداختن نماز از وقتش ترک کردن جماعت و نماز جمعه قضای نمازهای مفروضه و دیگر جیم منکرات در قبر و حدیره و متعلق به آن بلند کردن قبور از حد شرعیش پختکاری قبور و انداختن اشیا بالای قبور و یا رفتن به قبرها به نیت تعظیم و تبرک ایجاد قبرها در مساجد اعلان جنازه از طریق بلندگو در مساجد و غیره استعمال مواد مخدر از قبیل نسوار سگرت چرس تریاک شراب و غیره قاشاق، کشت و تجارت آن هم از جمله منکرات به حساب می آید و همچنان در قسمت زندگی منکرات زیادی وجود دارد که در ساحات خلافت اسلامی از همه اینها جلوگیری خواهد شد و هر کسی که به این اعمال مبتلا باشد از طرف خلافت اسلامی مطابق احکام شریعت اسلامی به جزای سنگین روبرو می شود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته إذا فتحت لنا بلد اطمنا حدود الله وانقشع الضباب اطامه شرعه حق علينا نطبق ولو قطعت اطامه نطبق ولو قطعت اطامه طاغوت شيناسي طاغوت شيناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لنفصامها والله سميع عليم اللهم <تصفيق>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 غالباً طاغوتا دوست داشته باشد یا زبانان این طاغوتا تعریف میکرد باشد یا همان از طاغوت اطاعت میکرد باشد ای ازنده‌ی نواقض کلمه ازنده‌ی نواقض ایمان است این برنامه را شب به شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید کیمل ک دیبی سلام ععلیکم رحمت الله یاباراک و شنامنگانی از زی رادیو صای خلاافت و صدای خلافت برنامه تاغوت شناسی خوش آمدید امید است از برنامه های مختلف رادیو صای خللاافت بهره نیک بگیرید و همچنان آرزو داریم این برنامه ها سبب ابزایش معناماتیل می توان گردد برنامه ای تاغوت شناسی نیز در کنار برنامه های دیگر و معلومات علمی شما میافزیت در برنامه محترم مالی سیب ابو احمد را و خود داریم که اینجا در استیدیو با ماستن ما که با ایشان سوالاتی را در مورد تعریفی طاغوت اقصامیان و حکمی بیزاری از آن سوالاتی را مطرح میکنیم ایشان و این سوالات ما پاسخ خواهند داد. مالی محترم به برنامه خوش آمدین من هم بنابرای خود سلام گرم خود را برای اشنواندگان رادی صدای خلافت تقدیم میدارم مالیسی محترم قسمی که معلوم است در اصری که ما زندگی میکنیم جامعه پر از تاغوت شده و تاغوت های زیادی در جامعه قد علم کرده و رنگ های مختلف به شکل های مدرن و پیشرفته ما خواستیم در سلسل برنامه های رادیو صدای خلافت برنامه ای را زیر نام تاغوت شناسی مدی نظر بگیریم و در این برنامه خود به احکام تاغوت میپردازیم خواستیم در اولین برنامه خود شما را مهمان خود داشته باشیم با شما سوالاتی را مطرح کنیم در مورد تاغوت امید است که به عزیز روشنی بندازین سوال اول از این قرار است که تاغوت چیست و تاغوتانی عصر کی هند؟ نحمده و نسلی علی رسولی الكریم و بابد بسم الله الرحمن الرحیم برای تاغوت علماء تعریف های زیادی کرده است و یک مشهور است که تاغوت او را عبادت کردن می شود، دیگران او را عبادت می کنند و او از عبادت دیگران راضی باشد، این را تاغوت می و تاغوتان اثر، همه حکومت های تاغوتی به نظام های وزی، به قانون های غربی فیصله نمی کنند، مستپارلمان ها سه قانون های وزی از پیش خود می سازند و قاضی هایی که به قانون های وضع بشری به قانون های کفری فیصله میکنند و مسائل و جنجال های مردم را به قانون های غیر شریع با قانون های کفری فیصله میکنند این را طاغوت گفته می شود و سایرها ها و جادوگران و کاهن ها که مردم را گمراه میکنند مردم پیش اونها می رود گپای اونها را باور میکند اونا از کارهای مردم راضی است از این طریق پیسه و پول پیدا میکنه یارم رم تاقود کفتن میشود اینا هم تاقود ها هست مالس شما به پارلمان و کسایی که به غیر منظر حکم میکنن اشاره کردید و امروز در جامعه امی چیز به شکل وسیع جریان داره که در هر کشور نظام پارلمانی وضع است از طریق پارلمان قانونی اساسی برای کشور تعیین میشه بر افغانستان امینی 14 سال است که امین نظام جریان داره و قاضیانی که در نظام فعلی به غیر الله حکم میکنن حکم همی امینان امیستک دهی بار اگر شما شنوندگان عزیز معلومات بتین بله الله تعالی در قرآن عظیمشان میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فالائک هم الكافرون کسی که به غیر الله حکم میکنه او کافر است پس پارلمان به غیر الله حکم میکنه پارلمان مزدور و غلام های کفار غربی هستند از غیر گود بغیر مانزرالله غیر شریعت غیر قرآن حکم صادر میکنن و قاضی ها به همه قانون های غیر شریع بشری که پارلمان تصویب میکنه یک قانون را با او فیصله میکنه همه اینا تاغوته هستند و مسئولیت مسلمان همیست که در برابر همه تاغوته باید کفر و بیزاری خود را آشکار کنند ایجا سوال دیگه پیش میه که اقسام تاقود کدام ها اقسام تاقود همیشه بیان کنین و چند نوستی تاقود ها در جامعه یا بر شکل عموم در تاریخ چند نوست تاقود گذشتگیست یا در اسریف کنونی تاقود به چند قسم است تاقود علما به سه قسم تقسیم کردگی است اولش تاقود در عبادت تاقود در عبادت اما معبودان باطلی که مردمان او را عبادت میکنند ای را گفتن می شود. دوم تاغود در حکومت تاغود در حکومت بعد از اولاما به دو قسم تقسیم کردگی هست یکی کسایی است که حکم و قانون الله تعالی را تحریف میکنن مثل پارلومان باشد که قانون را تحریف میکنن از پیش خود قانون می دوم کسایی که با قانون وزی به قانون بشری به قانون تحریف شده و فیصله میکنن ای را در حکومت میگن سه تاقود در اطاعت کسایی که بغیر منظر الله مردم دعوت میکنه یا قرآن و حدیث را تحریف میکنه برای مردم ابلاغ میکنه مردم گپ از او قبول میکنه و از او اطاعت میکنه ایرا تاقود در اطاعت گفتن میشود مثال باتن دی وقت سیاف که قبلا در دوران جهاد روز خیلی جهاد کرده اگه است اما امروز در پالوی در آغوش امریکا استادگی است اما آیت هایی که در مجاهدین حدیثی که در باره مجاهد آمده است، یا آیت حدیثی که در فضیلت یک مؤمن و مسلمان آمده است او را برای اردو، پولیس، هربکی، همین مزدور غلامان و جیفخوران امریکا و مزدوران امریکا با اینا, ای اینا را تدبیق می مستاق مستاقی همه آیت و حدیث را گفته برای مردم می کسایی که در اطاعت از قانون الهی و در مقابل اینمی طاغت در مقابل اینمی کفار اینمی اشخالگره و متجاوزین و مزدرانش جهاد مبارزه می کنه آیت هایی که در باره کفار است در باره منافقین است بالا اینها تدبیق می پس اینمی سیاف یک طاغت است. کسی که گپ سیوف قبول میکنه و از گپی سیاف اطاعت میکنه و ایره تاغوت در اطاعت میگه و ایره شرک میگه در شریعت در این موضوع من چندی پیش ما یک بیانیه سیوف از طریق رادیو شنیدم که میگفت کسایی کی در صفی اردو پولیس و اربکی کشته میشه و جایش جنت است کسایی که در مقابل از اونها کشته میشه جایش دوزغ است و ایرم بسیار با جرئت میگفت که قولی رسول الله قولی پیغمبر از قولی ما نیست میگفت از دهن تو اشخاصی که اینا ادعای علم و عالمیت میکنن سخن مبرایا می و مردم عوام به سخن اینا فریب میخورن و چاره چیست که مردم به سخن تو مردم فریب نخورن و در شرکه که شما بیشتر اشاره کردین دیش واقع نشن چاره چیست چاره این که سایف خودش کافر شده گی است الله و تعالی در قرآن عظیمش میفرماید الذين امنوا یقاتلون فی سبیل کسانی که ایمان آورده است مؤمن است در رای الله تعالی میجنگند به خاطر تطبیق شریعت الله قانون الله نظام الله بالای مخلوق الله اونا مبارزه میکنه و جنگ میگونه کفر و کفرو كفروا یقاتلون فی سبیل تاغوت، کسانی که کافر است بیدین است در راه طاغوت میجنگه الله تعالی در قرآن از فرمان صادر میکنه شما بجنگین با دوستاران با دوستان شیطان این حق لكم عدو البته شیطان دشمن آشکار برای شما است پس سایه جنگش مبارزه در نفع آمریکا است در نفع طاغوتان امی زمانه است در نفع انمی ظالمان تاریخ بشریت ظالمان تاریخ اسلام آمریکا و متقیدین امریکا در نف اونها سیاف دین تحریف کرده تبلیغ میکنه باید مردم و مسئولیت امیه است که کفر خود را بیزاری خود در مقابل سیاف اعلان کنه قلبا سیاف بد ببینه و زبانان هم لیسانان هم سیاه سیاف بیان کنه اینا خاینان اسلام و باللباس اسلام باللباس عالم بلونگی عالم اسلام تخریب میکنه باید کفر خود را زبانان هم در مقابل اونها آشکار کنه و عملا در مقابل سیاه باید مبارزه کنه ولتنا با اسلام کرامه تعني من البساله گل های گل های خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بر بای ببرید برنامه فکری، تعلیمی و تربیهوی با که با دختارا که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی برمه بگی که کدام کدام دعا یاد داری؟ داینم خوردن، دعای از خو دعای کردن اینها اطفال شیران خلافتند. اینها آینده درخشان خلافتند. هند پیام است که بیان به خلافت اسلامی و از گناهان تو بکنند. بله، بله اینها های خراسانند که در کوه‌های خشک جنگلهای بی پایان و آوازهای حیبتناک صلاحای سقیله به فکر و روح اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است دیجه بمبوری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزار را نمی‌ترسی؟ نه، الحمدلله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 ما تا اکنون تعریف طاغوت و اقسام طاغوت هم شناختیم. در قرآن کریم آیات های متعددی وجود دارد در مورد طاغوت و اقسام طاغوت بیان کرده است البته کلمه توحید که مهمترین چیز در دین اسلام است که مؤمن باید به با او معتقد باشه که عبارت از کلمه لا اله الا الله و بغیر از ایمانی کسی درست نمیشو اینی کلمه شامل دو جز است یکی لا اله است دیگهش اش که جزی اولش نفی جزی دومش اثبات است که را آیه دیگه ای در سوره بقره است فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى ایام جزء نفی جزء دومش اثبات است ارتباط بین کلمه و امی چیستک؟ آیه چیست آیه ای که در سوره بقره الله تعالی بیان کرده است ای این تفسیر اینمی کلمه توحید می در کلمه توحید لا اله الا الله اولا جزش نفی است لا اله دوم من جزش اثبات اس الله لا اله لا کفر بتعوت دیجاست یعنی هیچ خدای نیست الا الله بغیر از یک الله علی علما میگه یکی دفع مذرت است دوم جلب منفعت است دفع مذرت میگه مقدم است بالای جلب منفعت مثال بزنیم یک انسانی که در روز جمعه به نماز جمعه میرود سنت طریقمیز که غسل کردن می شود. او اول غسل میکنه جانای خدا صفا میکنه کمال با آب و صاف و صاف میکنه بعد از کاله نو میپوشه و عطر زده به مسجد میرود بخاطر خواندن نماد جمعه در این جه هم ای که دفع مزارت در کلمه تعهید اول ذکر شده است اول انسان کفر خدا با تاغوت کفر خدا با شیطان با همه تاغوتا اعلان کنه و این ایمان به توحید الله تعالی بیارد در بین کفر به طاغوت ایمان به الله میگه تلازم است اینه کسی که موحد نباشه و مسلمان نیست توحید اصل ایمان است دوام میکنه که به الله وحید دلاشتریک ایمان دارم. لیکن با طاغوتا کفر خدا عشکار نکرده باشد اینه قلبن دوست داشته باشد رضا به با کفر کفر است, کفر است یا زبانم در نفع طاغوت تبلاغات میکرده باش و به با الله ایمان نداره یا عملا از تاغوت اطاعت میکرده باشد برخلاف حکم الله و تاله طاقود حکم میکنه از طاقود اطاعت میکردهش و مومن نیست پس در بین کفر با طاقود و توحیر اطلازم است پس هر و مسلمان موحد میباشد پس مسئولیت هر و مسلمان است که با الله واحد الله شریک ایمان بیاورد همه تاغوتان را باید قلبن و را بعد ببینه بغض و عداوت قلبن داشته باشد زبانان مذمت و بدیهای هزی بیان کنه و عملا در مقابل هر تاغود باید ایستاد شو و مقابله کنه و مبارزه کنه و جهاد کنه و دهی ای آیت الله تعالی میگه و من یک به تاغود کسی کافر میشود به تاغوت یعنی دشمنی خود را با تاغوتاش آشکار میکنه و یا بلله او میگه به واحد الله شریک ایمان می آورد فقدیستم سو چنگ زدگی است بلعروت و یک محکم که توهید است لنفسا ملاها قطع شدنه نیست و کسی که دعوا میکنه که بالاله ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لکن قلبان توغوتو دوست داشته باشد یا زبانان یعنی توغوتو می میکرد باشد یا همان از توغوت اطاعت میکرد باشد یا از جمله نواقض کلمه از جمله نواقض ایمان است ی وای کس از ایمان خارج میشه اگر چنده دعوی اسلام ایمان داشته باشد مریم به سوال بعدی حکم بیزاری از طاغوت چیست یعنی بالای مسلمان ها چی حکم است که از تاغوت اینا بیزاری جویند یا اجتناب ورزند؟ حکم بیزاری از تاغوت از جمله اوجب الواجبات است بالای هر مؤمن مسلمانه یه ای ایمانی عقیدوی فرض واجب است که از هر تاغوت بیزاری خود را اعلان کنند چرا حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام از تاغوطان زمانش بیزاری کفر خود را آشکار کرده بود الله تعالی در قرآن نظیم بشند می قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ معه إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَ dualَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى دَيَايَات مِخْرْمَيَتْ در شان ابراهیم علیه اصلاة و, و او کسانی که همراه ابراهیم علیه صلوسلام بودند که مؤمنایی که همراه حضرت ابراهیم علیه لا بودن بودند این عمل اونها میگه برای شما یک الگو نمونه هست با اونها اقتدا کنید اونها برای قومشان که کافر بودند گفتند ما از شما و از آن خداهای باطل که شما عبادت میکنین ما بیزار هستیم و به شما ما کافر هستیم ما باش ما دشمنی داریم عداوت داریم و در میان ما و شما عداوت و بغض آشکار شده است. دائما ما با دشمن هستیم، بغض داریم، عداوت داریم، حتی اینکه به خدای واحد لاشریک ایمان بیاورید. پس این کفر به طاغوت، بیزاری از طاغوت که عمل حضرت ابراهیم علیه و السلام مؤمنا بوده است و از جمله او واجبات است بالای هر مؤمن و مسلمان یه فرض است که از هر باید اظهار بیزاری کند. الله تعالی در آیه دیگر میفرماید: ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان یعبدوا الله وشتنبو الطاغوت. الله تعالی میگه ما در هر امت میگه یک پیغمبر روان کردم. برای اونها این پیغام دادم که از الله تعالی شما عبادت کنید. یعنی الله را واحد شریک بدانید. و از طاقوت شما اجتناب و پرهز کنید. آلی حکم بیزاری از طاقوت تفاهمی چنانچه معلوم است چناندگان عزیزم میفهمند که در اصری کنونی اقصام طاقوت بسیار زیاد شده در افغانستان یا در ممالک دیگر، آمریکا که رأس طاقوت است و با ما در رأس طاقوت قرار داره. حکومت های شده در ممالک اسلامی نیست منتشر کرده و در هر کشور یک مزدور و یک دست خودشان ده، که اینا هم قرار معلومات که شما دادین از جمله تاغوت به حساب میان. کسانی که از امی پیروی میکنن از اوباما یا از مزدور که اوباما داری ممالک شاندن از اینا پیروی میکنن حکمشان چیست؟ حکم پیروی از تاغوت یک کفر است. کسانی که از تاغوتان اینمی زمانه از امریکا گرفته تا... پایین که امریکا امریکاستانه در اطاعت امریکا مردم دعوت میکنه در نفع امریکای نمبارزه میکنه از این اطاعت میکنه اونا کافر مشک گفته میشود عدی بن حتم رضی اللہ تعالی او مسلمان شده بود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برای از این آیت تلاوت کرد اتخذ احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله در یهود نصارا نازل شدگی است یهود و نصارا علماء خود را که برخلاف شریعتشان او حکم میکرده و همه عابد و هایی که داشتن او بغیر از الله تعالی اعبادت کرده گیست یعنی مطلب آیت همیست که یهود نصاره علمایشان را و روحبان روشان را بغیر الله تعالی اونا خداها قرار دادن رب قرار دادن او ها اعبادت کرده گیست پرستیش کرده گیست عدی ابن رضی الله تعالی نهو برای رسول الله صلی اللہ وسلم عرض کرد یهود برای علماءشان برای روحبانشان سایده خونه کردند چی قسم اوها را عبادت کرده ایست اونا را رحب قرار داده است؟ رسول الله صلی اللہ وسلم در جواب گفت آیا اونها حلال خدا را حرام قرار میدادن برای شما میگفتن شما گفت اونها را قبول میکردین اطاعت میکردین حضیب نحاتم عرض کد بلی آیا اونا حرام خدا را حلال قرار بودن بر شما بیان کنه شما قبول میکردین بله پس گفت گپ یک نفری که برخلاف شریعت الله برخلاف قرآن گپ میزنه از گپ از اطاعت کردن وای خودش شرک است اما نفری که اطاعت میکنه این اطاعت در شرک میگه گویا که او را رب قرار داده او را عبادت کرده باشین پس دای زمانه کسایی که خود مسلمان میدانن از این طاغوتا از امریکا و از غلامان امریکا این از رئیس جمهورش گرفته تا پایین درین کسایی که در پوست های نمی حکومت های طاغوت است، گپ اونها را قبول میکنه، فرمان اونها را قبول میکنه، از فرمان گپای اونها اطاعت میکنه، اینها را هم حکم شریست که کافر می شود، مشک می شود، از اسلام برمیگردد و اطاعت طاغوت یم از جمده نواقض کلمه توحید است، از این باید مسلمانا پرهیز کنند و از این اطاعت نکنه و در مقابل طاغوتها دشمنی خدا اشعار کنه جهاد مبارزه کنی مسئولیت ایمانی اسلامی هر مؤمن و مسلمان است تشکر مالی سبزی که وقت هایتان را خدمت ما و نمایندگان عزیز رادیو صدای خلافت قرار دادید شنوندگان عزیز این بود معلومات امروزی در مورد طاغوت تا برنامه های دیگر که با هم با معلومات جدید در مورد طاغوت خصام آن در خدمت شما قرار میگیریم همتان به لای ازال سلام و رحمت الله و برکات منهج تا منحج برنامه فکری سیاسی نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی در کل فرقه های بسیار زیاده بین امارت و خلافت وجود داره امارت بینوان یک تشکل قومی و بینوان یک تشکل سیاسی با رنگ دینی قد علم کرد و نقطه را گذاشت که ما علیه کفار مرتدین مبارزه می‌کنیم دین الله را تطبیق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 شما را به الله عز و جل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.